جلسه بیست قواعد فقه و سیاسم ادامه بحث تزاهم بیست سه هزار مدرسه عالی هزوی ممرزان سلام السلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين سیدنا و نبینا عبدالقاصم محمد وعلو اهلوات دارمین سی مبقیت الله في العظم روحی و الوحل با ترکل و خود و امتعال و توصف دید امرو وحده بحث رو آغاز میکنی در بحث مرحوم ناینی در از بحث تضاهم دو تقریر و نوع دونو منچه ناسی برای تضاهم و بر اساس اون دستبندی رو عرض کردیم دیگه ای رو هم ایشان دارند که کمک میکنن که ما بفهمیم که این مقوله چه تصاویری داره نکتی اساسینی که ایشان می فرموند اون نقطه ابتدایی که معمولاً ما می که تمکن بر امتصال بر دوحک نیست این رو یک مورد از موارد تزاهم باید محسوب کنیم. اما موارد دیگه هم هست لذا با تقریرهای مختلف این رو بیان می فرمان. در یه تقریر دیگه ایگر یه ذراعف دیگه هم هست که به صورت اجمالی می بینید که خدمشو از من در فواهد و لسول جلد 4 صفیه 707-709 ایشان این ذراعف رو می‌فرمایند. یه نکته اینه که آقا این تضاهم اختصاص به عدم قدرت بر امتصال دو حکم نداریم روغ و تضاهم بین الحکم لایخت است و به صورت عدم القدر علال جمع بین فل فلانتصال محدود به این نیست بلکه یه جاهای امکانش هست ولی یه حیث دیگه توانه دخالت بکنه و در واقع این پنج قسم تضاهم به وجود بیا. اون یه جایی تمکن داریم بد قلیت بل یا تفخه خود تضاهم بینال حکمین مد تمکن مل جمع بینه همه الا ان نزالکه نادرون در یه موارد نادری ما میتوانیم خلاصه جمع بگیم اینجا تضاهم رخ داده. اما موارد قالبش اینه که قدرت بر جمع نداریم اما محدود به این پس نیست یه نکته زریف بعد می که چند قسمه این در یه تقریر دیگه تضام که پنج قسمه یه قسمش چیه یه قسمش اینه که متعلقای به صورت وجودی با همچی دارن تنافی و تنافی دارن بباشید اتحاد دارن با وجود اینکه که تقایر ذاتی ندارن ماهیتا اینو با هم سازگارن یکون لعجل اتفاق اتحاد متلق حکمین تطابع اضافات لعجل اتفاق اتحاد متلق حکمین چی اتفاق رخ میده؟ چه اتفاق رخ داده؟ این دو حکم متلقشون وجودن یکی شدن اتحاد پیدا کردن این اتحاد رخ داده اتفاق پیدا کرده رخ داده با این حالی که اینها ذاتن مقایرن مخ... بلکه محکن متقایرند، متقایرن اینه به ذات و مختلفه اینه فلحفوی اما این اتحاد به نحو انزمامی شکل گرفته این دوتا با هم آمدن به هست یکون رو الاتحاد بین امام قبیل ترکیب انزمامی خب ترکیب انزمامی چیه؟ این رو هم اشاره بکنم تو بحث نماز در دار قصبی هم این تعبیر انزمامی رو میارن بعض بزرگ باران حالا این نکته هم باز عرض کنم یه جاهای این بحث اجتماع امررائنا این خ خب نزدیک خود بزرگران هم گفتن حالا در بعضی موارد که میان خب اون بحث قسب و نماز قسبی و یه جایی به بحث اجتماع امرراه امرو نه نزدیک میشه. یه جایی بحث ترکیب انظامه مطرح میشه اینجا همه لشان فهمم میگن آقا این دوتا ترکیب انظامه میدارن ولی ماهیتان و حویتان دوتا نزی تر... ترک کل جسم من المادته و سورم و علازالکه یبتنی جواز و اجتماع امر و نهی اونایی که قائل به جواز اجتماع امر رو نحیم میگن آقا اینو ماهیتان دوتان بله حالا اتحاد وجودی پیدا کردن واین درجه مورد و تصادق متعلق الامر و نه فی صغره تزاحم که ما هو المختار ما که اجتماع امر و نهی رو قبول میکنیم چه جوری قبول میکنیم میگیم آقا این از مصادق تزاحم میشه اگر قائل به جواز باشیم ده اگر قایل به جواز باشیم میفته چیه تو سغرای تضام یعنی, یعنی مرجحات رو بیار اینا با هم تنافی ذاتی ندارن اما اگر ترکیب اینها اینگونه نباشه اتحادی باشه انزمامی نباشه که اینا با هم مثل ترکب جسم و ماده و صورت با هم ترکیب بشن نه اتحاد اتحاد داشته باشن انزمان پیدا نکرده باشن که بشه جدا حسابشون کنیم واقعا با هم باشن مثل جنس و فصل و یکی از اینها با اون یکی حبیتن و ذاتن ولو فیل جمله با هم یکی شده باشند و آملاو کنه ترکیب بین المطالقان اتحادیان این دوتا یکی شده باشند انس منظم نشده باشند نظیر و ترکیب بین جنس و الفصل و کان عهد و متعلقا متحد در آخر دل حوییت و ذات ولا آفل جمعه و فی بعض الموارد اینجا دیگه تظام نخواهد بود فلا اکمه ما به تظام ولی رو کجا در زیل بحث تعارض مصداق تعارض خواهد بود مصداق میشه به مورد و تصادق متعلق الامروند فی صغر تعارض ما دو تا بحث دو تا باب جدا داریم تظام و تعارض مصادقی داره اینجا اگر ما این مبنا رو قبل بگیم که اتحادیه میشه چی؟ این اتحاد ماهوی پیدا کرد، اتحاد ذاتی پیدا کرده باشه میره زیل کاروز، که تاروز, تاروز من وجه و الازاله که یبتن امتنا و اجتماعی الامرونن کسایی که غالب اجتماع الامرون نهیان چیه جوری میگن؟ میگن آقا اینها ماهیتن با هم یکی شدن و مساق توروس شدن فندعو علاهذا یکون الامر بالصلاه و نهی عن الغصب عینه کل امر به اکرام العالم و نهی عن اکرام الفاسق چطور میگه اکرام عالم اکرام نهی از اکرام فاسق با هم یه تنافی و تلاقی پیدا میکنه اینجا هم امر به صلات و نهی از غصب دو تاست یه کسی بیا میگه آقا غصب و صلات دوتان با هم منظم شدن و بنابراین قائل به اجتماع امرو نه میشه ما اینو میبریم جز مصادیق تضامه ساب میکنیم سلاته در دار قصبیه سالات امرو داره نهیم دو دوتا فعل جداست ولی من با یه تیر دو نشان میزنم خب نمازم درست باشه دیگه نمازم رو چه کار داری شما بگو کار حرام کردی دیگه به شما چه ربطی داری بگی آقا سلات من باطله نه این دو اما اگر ما این قبول نکنیم بگیم از مسادق دیگه کار مشکل خواهد بود ولا اشکال افیاد نهو فی مورد تصادق العالم و الفاسق یقع و بین بیند عالم و فاسق الان ما هم تصادق بدونم خواهی میشه تعاروز دیگه میگه اکرام بکن اکرام نکن من چه کار کنم دیگه دوتا کار نیست مثلا نماز میشد بگه آها نماز بخوان قصد نکن اما اگر من جزء تعارض ببینمش شبیه این میشه شبیه اکرام بکن اکرام نکن میشه ولو به خاطر آله بودن و فاسق بودن شبیه اون میشه ما تو اون مورد که تعدید نداریم لعن نهو یل زمین تعلق الامرو به عین ما تعلق به نه فقط قد تقدم خیلی جز سانیم این کتاب تخصیر که به مال مزید اما ما جلد چهارمی اون جلد دومه از این مورد اول شد چی؟ اتحاد وجودی خاطرتون باشه که ببینید با اون دو, دو تغییر قبلی ترتیبشون هم فرق میکنن ولی اهمیت نداشت ترتیب مهم نبود هیچ جا نگفتن اینها، ها چون فقط میخواهن اقصام میگن مورد بعدی اتفاق این چیه تلازمه. وقعه تلازمه و اخری و تضامل عجل اتفاق وقعه تلازم بین متعلق الحکمه معنیش چیه؟ به معنی انهو اتفاق الملازمه بینه امتصال احد ل مخالفت الاخر این دوتا تلازم دارن یکی رو انجام بده اون یکی مجبور ترک کنیم اگر این تلازمه باشه دائمی باشه چی میشه فلاکانت تلازم بینه دائمیتا این میشه دیگه جزء مصادیق تعارض. لیمتناه تشریح حکم یلزم من امتصال حتی من آخر الاخر دائما یه بچه این که من دارم در عبارت مشابه در موتون مختلف میخوام عمدن وای میسم میخوام که هم پخته بشه بعد بزرگواران این روش رو خواهشان در پژوهش ها در تدریس ها پیگیر بشین الان این تغییر های متفاوت نگه ذهن ما رو متشتت میکنه خب یه جایی که ممکنه پیش بیاد ولی یه ظرایفی رو هر کدوم از مقرران میارن مثل الان نیست که خلاص دوستان بیان عین عبارات استاد رو پیاده سازی کنن دستکاری هم بکردن دیگه تقریر نویسی رو ما الان داریم با یه تیرم چند نشان می‌ذیم یکیش که ببینید چه جوری تغییر دادن هم خودشون مثلا نوشتن سعی بشه اون ظرافت یعنی کوچکترین کلمه میتونه در بس تاثیر داشته باشه خب الان به جای میگن بگن مصاغه میگن دیان درش فی صغره تعارض فی صغره اینا رو دقیق بفهمید یه مقداری هم اگر دوستان بشه تقریر عربی هم تمرین کنن خب خیلی خوب میشه بعد ببینید الان رو مفهوم ملازمه یه جای تلازم رو آورد تلازم الان رفت مفهوم ملازم خیلی به هم نزدیکه تفاوت ذاتی نداره ولی به هر حال بار معنایش ممکنه تفاوت داشته باشه یا نه رو باید دقت بفرمایید یه بار بگه تلازمه بگه ملازمه ال... البته در نظرشان زارن یکیه دیگه ولی باز دقت کنیم بهتره فلاوکانت الملازمه بین ما دائمیان دائمیتا در جان فی سغرت هاروز چرا؟ لیمتناع تشریح حکمین در عالم سبوت که دو تا حکم نمیشه داشته باشی بیال زمین امتصال احد ما مخالفت الاخر اگر ما یکیش انجام بدیم دستمان تسلازم دارن همین که استدبار کنیم استقبال رخ نداده تو اون موارد خاص زیرا زمین امتثال عهد ما مخالفت ال دائما کمال و فر ظنه قامت دلیل علی حجوب استقبال القبله و حرمت استدبار جهته فلق پطر اندلس و نهار فلقطز الذی تكون القبله فی نقطه جنوب کل عراق نه همه عراقه ای خط فقط یه سر شعر را اگر رو شهر روست داشت فه این ندلیه یت آرزان لامالته و, و زالکه باز هم پس اینجا همه بحث برمی به, به تا مورد بعدی یکون تز و تزامل عجل اتفاق وقوع عدل متعلقا مقدمتا لوجود آخر اینم شبیه اون تقریر اولی بود نگو حرام یکیش مقدمه وجود پس مسادقش بیشتره تو اون تقریر دومی گفت یکیش واجبه اون یکی حرام واد... اون حرامه میشه مقدمه یا واجب مثلا خب مثالش همین بود کمالا و توقف غیر علا تصافیه ارز غیر. ولی مثالای دیگه اگر آن بگیریم یکی مقدمه اون یکی باشه واجب واجب حرام حرام واجب و حرام میتوانن یکیش مقدمه و یکی باشه فلاوکانه هر دول متعلقن مقدمتن لوجود الاخرد دائما لم یندر جا فی باب تظام چرا؟ چون که اونجا امتناه دو تا تشری پیش میاد آم کما لم یندر جا باب تظام بل یندر جا فی باب, باب تاروز لم تناه تشریه الحکمه علا حاضر بنج این دوگه همیشه اینگونه است دیگه خب همیشه اینگونه است یعنی چی؟ یعنی دو تا حکمه. زده هم در عالم تشریع و ما تجوییز کردید مورد چهارم مزاده بین مطلقه این باشه این همون مورد اول تو دست اول این اومده اون. و رابطه یکون تزامل اجل اتفاق وقوع المزاد بنابراین کما لو اتفقت نجاست المسجد فی وقت الصلاه فلا كانت المزادهن دائمیتن یخرج امباب تزامم مورد پنجم این ترتب وجودی میگه باشه داشته باشن و خامستون یکون یعنی تزام لعجل کون عهد المتعلقن مترتبن فی الوجود و الامتصال علال آخر و قد و عدم و قدرت المکلف علال جمع بین اجاد المتعلقن این دوتا با همان مترتبن این وقتی خود قدرت هر دو رو نداره فی کل ما مكلف من و دو جمله اقسام خب این پس ما آمدیم این بحث رو آمادیم منشأ رو محل بررسی قرار دادیم یه نکته بسیار مهمم حالا بحثای مربوط به تضاهم و اینها بحثای خیلی زیادی توانه مطرح بشه بعضیش رو به اشاره رد میشیم این قسمت هایی که من عبارت خانه کردم ببینید اگر خاطر شریف دوستان باشه من فکر میکنم احتمال از همه کسانی که در ورودی مؤسسه من مصاحبه گرفتم فکر میکنم از همه مصاحبه شبندگان که من خدمتشون بودم تفاوت تزاهام و تعارض پرسیدم چرا؟ چون که یک مفهوم رایج کاربوردی رو ما در مقوله تزاهام باید زراغ بگیریم ما از صبح تا اصر میتوانیم در افعال تزاهامی باشیم آقا یه تزاهام بسیار مد... که خدمت دوستان وزمون به شوخی از میکنی ولی جدیه عیال گرامی عمر فرمود است که آقا زود بیاید منزل من کار دارم نه اصلا میخوام شما رو ببینم عمر عیال که نمیشه متاها نباشه خب خدا هم حالا باید ببینیم خدا هم چقدر خلاص عمر شما متاها میدنه ولی عرفت ما الان داریم در خدمت شما شماییم دیگه شما بزرگواران همه واجب میدانید خدا رو شکر به جای احل و عیال این بر این تنافی دارد یا ندارد با چه کارهایی میگه آقا من نماز بذار نمازم بخونم این عیال گرامی مثلا فرض بگیریم عیال حالا عمده دوستان که ساله ها شاید متحل باشن ولی به هر حال خانم های جوان دخترای جوان از شهر نگان خدا بلند شدن ان خب حالا اگر مثلا فرض کنیم به شما بگن شما یه موقع جزئی نگران نگاه میکنید بگید آقا این عیال ما گفت بیا امررس که متوا نیست او باید به امر من گوش بده خب قبولش کن مثلا نماز میخوان خب نماز هم که میخونید بعد گرفتاریهای دیگه هم, هم تو ممکنه بیام یک ساعت به تاخیر برید و به این ایال افسردگی میگیره در حال خیلی بوارد ممکن تجربه هایی رو ببینید شما حالا در خود شما ممکنه زود احساس نکنید بعضی مواردم اییال خو شما رو رذیت کنه حالا امن کرد شما بیاد دی با شوخی و جدی هم گفت شما ممکن نرید. بعد از یک سال بعد از شش ماه بعد از یک کم عچهیم خانم براشافته شده آها همونجا گوش نکرده بودید. حالا کار نداریم امر شهری حسابش بکنیم یا نکنیم برحال باید این خدفتی به احل و بکنیم در این مسافت های طولانی مثلا ولی یه جایی میبینید نه حالا خود عیالم خلاصه اصرار اونجور نداره عذیت هم نمیشه حالا گفت اقا بیا دوست دارم شما رو ببینم خیلی وقت ندیدم یک ساعت پیش فقط شما رو دیدم خب حالا اینجا متفاوت میگم دوانه باشیم الله اینای کمی شوخی هم عرض کردیم ولی میخواهم عرض کنم تضاهم در زندگی ما کلن جرایان داره سبک زندگی اگر شما خواستید اراع بحث بدی سخندانی بکنم کتاب بنویسید یکی از ترین پیشنهات ها میتوانه این باشه که من ندیدم کسی ها لعظیم منظر خیلی به بعدازه مسائل تضاهمی رو شفاف کنید بسادی خوش ذکر کنید اگر رساله عملیه خواستید بنویسید خدا انشاءالله شما رو به مرجعیت تقلید برسن کل این کلاس همه اگر به مرجعیت برسن چی میشه؟ خب این بزرگواران همزمان میخوان بعد تزاهم بین خودشون رو هم حل کنن حالا ما تزاهم ولی امر رو تزاهم مراجع رو بحث کردیم ولی دیگه انشالله شاء الله خود شما خواهید کرد بعد از اینکه به جایی رسیدید تزاهم کدام یک از این مراجعی که در کلاس ما حضور دارن بعداً مرجعیت خواهند اند یافت اینم یه معقوله است ولی به هر حال سبک زندگی می توانه پر از تزاهم ها باشه خب با تصامو من ارز کنم مفهوم تصامو رو در احکام واجب و حرام اینها بکار میانم در مستبات بین مستحب و واجب نمیگیم تصامو اما به حال باید مقدم کنیم یا نکنیم بله حالا بین دوتا مستب هم نمیگیم تصامو معمولا ولی حالا با تصامو اگر میخواییم بگیم شما وقت بسیار کمی بین نماز و مغربش ها کنید دارید کدام نافله رو میخونید نافله یومیه رو میخونید خب یا مثلا نوافل نافله قفیله رو میخونید خب نه وفله دو تا دروکت بعد بعد از نماز مغرب بخوانی توفیقش رو دارید انشالله توفیق نمازهای پنجاب چنگانه رو دارید اگر مثلا در نماز شب گفته شده که مصطبه خیلی محکده ولی اگرم نشد در رساله عملی اینا هم جمله هست که اگر نشد قضاشو رو نشود نشد صدقه بدید خب حالا اونان محفوظ نه چهار تا نماز نافله نماز ظهر رو چهار تا هم نماز عشاء ببخشید عصر رو اینا هم که جدا جدا است دیگه خب دو رکعت میشه بخونید در حین حرکت هم میشه بخوانید حالا نماز مغربش هم در مسجدی دو رکعت بیشتر نماز جماعت محترم سری میخونه فرصت به ما نمیده کدام رو بخونیم قفله رو بخونیم یا نماز نافله یومیه من برداشتم اینه که نافله یومیه اهم خب حالا شما ممکنه به فرمان قفله باید بپرسیم از کجا مثلا در ذهن بعضی دوستان گایقات هستش که مثلا حضرت زینب سلام الله علیه ها که برحال تو از دعای خیرشان هم در ایام انشاالله بحرمند بشیم اه اه اون مقدمه چرا؟ چون که حضرت زینب مقدم کرده تو ماجرای کربلا اینا در ذهن دوستان میاد ولی احتمالا تو نباید بگیم بعد بگیم نماز یومیه اون من نشانه های مؤمن و چه بسا قرار دیگه حالا برای مساله فقیه دیگه اسمش رو نذاریم تساهم یا وا تسامح بگیم ولی سوال شما هست پس رساله عملی که واسه بنویسید از بیوت مراجع این مراجع خلاصه مرجعیت مال بیوت مراجع اینو تلفیقش مشکل میسازه ولی مرجعیت درست میکنید بیت درست میشه بیت درست میکنید خلاصه مرجعیت درست میشه ولی خواهشن خواهشن شما دون مرجعیت نرید بازید خودش بیا بهتم خودش بیا خدمت شما خلاصه خواهشن نرید دیگه اگر قضا و قدر این باشه که بیا خدمت شما میان نگران نباشید ولی فرض خوشبینانه این که بیا خدمت شما رسالی عملی رو میخواید استار کنید من پیش آدم که در آخر هر بابی یه دویست تا مسئله تضاهمی بنویسید البته تبصیل داره یه جایی بعضی مسئله تضاهم بنویسید بدفهمی ایجاد میشه یه مقداری ممکنه افرادی رو بیاندازه به مسئله به فضای تساول گرایی مثلا یه بزرگواری در دفتر ایتاله مکارم اونجا گذاشته جزء دفتر استفتائات بودی زمانی ببین گفتیم مثلا سال آمده فرض کنیم خانم گفته اگر من در عروسی مثلا در جمع نرخصم الوبلم میشو دعوا و اختلافات خانوادگی و فالان حالا یادم نیستشون چی فرمودن نکنه مثلا اینطور مباحث یه ترویج میشه مثلا الان در رساله عملیه یکی بردل بگه اگر این گونه بود اون گونه بود شما در اروپا توانید مثلا یه مقداری حالو واس رو این گونه بپوشید وقتی اینجور باشه فتح باب خیلی چی میام بعض مسائل تزاهمدی خیلی اختصاصی باید بگیریم تزاهم های عام رو بگیم ولی به اقرار مقولی تزاهم این قالبی هم که من درس کردم عمدن تکیه کردم چند تا منچه ها انواع تزاهم ها که اینا رو کاملا جدا جدا بگیرید رساله پرباری حتی یه جلد مفصل میشه فقط مسائل رو تزاهمی ما به بعضی دوستان بعضی حلقات بحثی که داشتیم مفصل سر این من دوستان وادار میکردم خودشون مثال بزنن اگر پیشنات میکنم آجاهای لنگری از میان دوستان یا آجاهای کربلایی که شلومه میگن و بعضی دوستان دیگه این کار رو بکنن یک مرحله مثلا رساله عمله ببینید چند تا مسئله تزاهمی رو بردن دهین هر باب مثلا سالاد و فلان مثال خاصی که در ذهن شما هست که آقا من دارم نماز میخونم یکی میاد طلب من طلب کارت میاد اینو بوردن ولی خیلی مسئله میشه بیاریم یکی از کسانی که بسیاری از این مسئله رو جمع کرده آهای از ابن عبدالسلام قرن شاید یا پنجومه چند جلد کتاب داره معمولا این گراش ها و رویکرد های مقاصدی به او ارجاع زیاد میدن کتاب های فقه مبازنات که آرام آرام کمی از بحث مقاصد و اینا جدا شده یه مقداری بحث مستمایست شده همین فقه موازنات یعنی فقه عموم مهم این بندی خدا که شهید مرحوم شهید اول و اینا هم بهش عنایت داره در شامات بود و اینها قبادی کبراش هست کتاب قباد سقرا از چند کتاب های دیگه مقاصدی و اینا دارن خیلیش مثال های فقه موازنات و عموم مهم داره تضامه ها رو آورده چند ماه من متنش رو برای دوستانی زمانی با نگاه انتقادی و بررسی هم این فقه مستلات و اینها با کار میکردم این مدنش رو و توضیحات خالصه مربوط به متن. ایشان خیلی مثال ولی مثلا یه کار اینطوری من به نظرم اگر دوستانی فرصت داشته باشن مثلا در شهر لومه که مثلا جای کربلای تدریس میکنن دوستان دیگه چه بسا اگر خیلی خوبه. میخواد اصلا همین رساله احکام رو تدریس کنید این مسائل تضاهم رو جمع کنید از تو استفتاد در بیارید خیلی چیزا جالبی میشه منطق دستبندی میخواد یه دستبندی شو گفتیم که باز تکرار میکنم تضاهم مفصده با مفصده مسلحت با مسلحت مسلحت و مفصده این یه تقریر که خب ها این رو بیشتر و خیلی بیفصندن تق... تقریر دیگه که اون مثلت مقصد اونم بینم میتونه برگرده دیگه پایه همین کاره ولی این بیشتری کمی ناظر به آلم سبوت بیشتر است تضاهم واجب و واجب حرام و حرام واجب و حرام تضاهم بین اجزا تضاهم بین دوتا شرط تضاهم بین شرط و جز خب شرط جز بیرونیه جز جز داخلیه خب ایناس شوق مختلف تضاهم حقوق لا بلای بعضی خب حالا مسئله مهم که بگردید در دل فقیق اینش خیلی مهمه فقط اون لیست کردن مسئله و مسئله شناسی کافی نیست که اگر دوستان این کار رو کن خیلی جالبه مثال های خیلی زیادی بعضی موقع هم سخته ها یعنی با دوستان جمعه مختلف به بحث میذاشتیم می مثال مختلف یه مقدار دوستان باید مسلط بشن در که این, که این تطبی واجب و واجب است، حرام و حرام است، واجب و حرام است یا حالا مصلحت و اینها. نکته دیگه این پنج منچه‌ای که گفتیم، اینه کمی دشوارتره. یه جای تضاد، یه جای تلازم، یه جای اتحاد وجودیه، یه جای یکی مقدمه اون یکیه. این اینها رو ای هر مقدار شما ریز کارش رو در بیارید خیلی عالیه. خب آقا این, در این برای کجای فقه این برای کل فقه هست یک دو در عالم فقه و یکی از اساسی ترین مباحث کاربردی همین تضاهم هاست منطقه چون که در فقه کار نشده رساله‌ها ها و خیلی محدودی داریم بعد یه جایش هم دشواری داره یه جایش هم گایی خیلی راحت دوشبار بدفهمی میشه بعد اگر بخوایم در عالم سیاست ببریم تزاحم رفاه و ادالت تزاحم عدالت و امنیت، خب اینا باز ریزکاری خیلی داره. تزاحم واجبات مربوط به عالم اقتصاد با واجبات عالم اقتصاد. واجبات عالم سیاست با واجبات عالم مثلا اقتصاد. با قضا با حقوق عامم ولی این پایه و زمینی اصلی اینه که این چند تا بحثی که مرحوم ناینی ببیشه چون که بحث تظام قبلا اشاره کردیم در بحث مرحوم صاحب جوار من گشتم هفت مورد یا نه مورد به این عنوان مقابل تعارضشان آورده اساتید ایشان من گشتم پیدا نکردم بعد از ایشان مرحوم پر شیخ انساری هم پررنگ رنگ کنه صاحب جواهر هم می مقداری بعد می مرحوم ناینی بستش میده در کتاب اصول که دو جا عرض کردیم بعد می رسیم به شهید صدر و بعضی از بعدی های معاصر حاج آقا مصطفى مثلا یه جای زیاد مفصل داره من تا دوشواری های زیادی داره بعضی بزرگان هم اینو کاتی دارن در مقام بحث اصول بعد مسئله خوب اینا شفاف بشه بعد میام در مقام تطب این آقای اهل سنت خیلی این بحث تطبیقی رو چون بعضی شخصیتاشون مثل همین عزددین ابن عبدالسلام بعد ابن تیمی خیلی داره که برای سرمنشه این وحابیت و اینا همه هست اینا همبلی ولی بعضی از این مباحث رو خیلی جدی دارن ما تو توفق اصول خودمون یه کمی اینا جدی نگرفتیم البته شاید یه منشهش هم این بوده که قبلا به بحث تعارض برمی خب سنیو هم همینطور ولی به هر حال این یه نیاز جدی هم در سطح فقه فردی هم در سطح فقه اجتماعی که مناسبات اجتماعی رو بخواد در نظر بگیره مناسبات فردی فقط در مناسبات فرد در کارهای فردی و بالاتر در فقه حکومتی خلاص همه اینها میتوان مد نظر قرار بگیره این تفصیلی که بعضی قسمت‌ها رو بنده درش ایراد دادم میخوام یه مقدار این زوایا دوستان پر رنگ بدن تضاحم حقوق یه جاهای فقه مثلا تضاحم حقوق داریم یه ابواب خاصی بیشتر پرداختن مثلا اون جایی که بحث این هستش که کوچه و کوچه داریم ما مثلا یه چیزی فرض کنیم یه منزلی سوراخ کنیم چاه بزنیم یه جایی تضاحم حقوق داریم همین رو جستجو کنید در موارد میام ولی مسائل خورداری زیاد داره ولی ما بعد اینو بحث بدیم اول در مقام بحث اصولش و بعد به نحو قواعد اصولی زیر مجموعه اینا ببینیم چند تا قاعده است که رو اشاره خواهیم کرد ان شاء الله خب الحمدلله رب العالمین صلی الله علی سیدنا و نبینا আবুল قاسم محمد و علی اهل بیت طاهرین المعصومین سیه مبادئ الله فعل زمین روحی و ارواح العالمین له الفدا